حکایت جوانی پاک باز پاک رو بود که با پاکیزروگی در گرو بود چنین خواندم که در دریای اعظم به گردابی در افتادند با هم چون من لا آمدش تا دست گیرد مبادا کند آن حالت بمیرد همی گفت از میان موج و تشویر مرا بگذار و دست یار من گیر. در این گفتن جهان بروی وی شفت. شنیدندش که جان میداد و می گفت عشق از آن بتال من یوش که در سختی کند یاری فراموش. چنین کردند یاران زندگانی کار افتاده بشنوم تا بدانی که سعدی راه رسم عشق بازی چنان داند که در بغداد تازی، دلارامی که داری دل بند، دگر چشم از همه آدم فرو بند، اگر مجنون لیلی زنده گشتی، حدیث عشق از این دفتر نبشتی.